بندگان عزیز و اگران قدر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بیندگان محترم در برنامه یازده از برنامه های دروس عقیده از قرآن و سنت قرار داریم در این برنامه دوستان عزیز میخواهیم خدمتتان درباره توحید صحبت بکنیم الوحیت چی معنا میته در لغت خود کلمه الوحیت از اله کلمه الاح علهه یا لهو الها پس ای از کلمه اله گرفته شده که اله به معنای معبود هست و مثل که در کلمه ما شما میخواهیم که لا الهه نیست هیچ معبودی به حق یا کسی که به او عبادت و مستحق عبادت باشه الله بغیر است الله جل جل هم. پس توحید الوهیت کدام توحید میگن در اصطلاح عقیده اسلامی خود کلمه الوهیت ترجمهش میکنیم به معنای توحید عبادت پس در اصطلاح توحید اولیهت عبارت از عبادت الله جل جل هو بیگانگی و اطاعت الله جل جل هو بیگانگی و عمل نمودن به آن چی که الله جل جل هو آن را دوست دارد و به آن راضی گردد یعنی اینجا چند نقطه هست؟ نقطه اولی است که ما تمام های خود مخصوص الله جل جل قرار بدیم و اطاعتم از الله جل جل بکنیم و در طاعت و عبادتی که داریم ما این کارهای را بکنیم که بفهمیم که یعنی عبادت است که او سبب رضایت الله جل جل میشه و به او الله جل جل راضی میشه این وقتی که یک مسلمان امیر فامید پس طاعت و عبادت مخصوص الله جل جلو چه قسم؟ وقتی من دعا میکنم فکر میکنم من دعا بونم در مقابل یک قبر بکنم در مقابل یک زیارت بکنم وقتی که میم که دعا عبادت است پس الله جل جلاله گفته که وقال و گفته پروردگارتان ادعونی استاجيب لكم دعا کنین بر من از ما بخوایم پس وقتی که ما از الله جل جلاله می خایم و دعا عبادت است ایه کان و پروردگار خواسته راه عبادت میکنیم پس ما دست دعار در مقابل قبر پیغمبر بلند نمیکنم که پیغمبر چی میکنیم می به طرف قبله دار میتوم و به بارگاه الله جل جلاله از الله می دعا خواستن و طلب کردن از که می از الله جل جلو می پس وقتی که دیسی دعا را بالا می به ببارگاهی الله جل جلو بلند می خوف و ترس فلا تخوفوهم و خافونی این کنتم مؤمنین فقط از الله می ترسیم با الله توکل می و از الله کمک می با الله پناه میجویم از الله استعانت میخویم. ایا که نستعین ببین قرآن کلش بر ما درس میده از کی استعانت بخواییم خاص از الله جل جل کمک بخواییم با کی پناه ببریم الله جل می میقل اعوذ بربی الناس پناه با کی ببر با پروردگار قانون که رو تطبیق بکنیم و در قارم ای وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ امت رسوله در ار امت رسول است، چی؟ اعبود الله و اشتنب الطاغود عبادت الله را بکن و اشتنابت چی بکن؟ استاغود به هر صورت آل این فامیدیم که طاعت و عبادت خاص به الله جل جلوه است وقتی که طاعت و عبادت مخصوص الله جل جلو است از توحید چی خود توحید الوحیت چی شرط داره توحید الوحیت یا توحید عبادت مجموعه از شرطهایی داره که این شرط ها را باید ما منیست یک انسان مسلمان و مؤمن این شرط ها را بفامیم و مطابق از او 24 ساعت زندگی بکنیم ای شرطها چی هست؟ اول هر چیزی که عبادت نامیده میشه و خاص به الله جل, جل انجام میدیم هر چیزی که برای قرآن و سنت و اجماع و قیاس بر ما شریعت سا... گفته که اینی عبادت است یکی است که عبادت نیست او بدعت است او بدعت است اما آنچه که عبادت است یک ارمطوره دو مراعات میکنیم هر چیزی که عبادت نامیده میشه اوره خاص به الله جل جلو میکنیم. دوم شرطی است که هر چیزی که عبادت است که ایر خاص به الله جل جلو کردیم همیره به نام الله جل جلو میکنیم یعنی مثلا ما ضبحه میکنم یک حیوانه اینمی حیوانه می فهم که می عبادت کردن پس ما قربانی میکنم کنم به خاطر رضایت الله جل جله و در قربانی ما هم به نام الله جل جله جل می کنم و سیوم شرطی است که باز امیر در مقابل الله جل جله جل بکنیم عبادت به خاطر رضایت الله به الله و سوم نقطه که در مقابل الله جل جل از ازی خاطر وقتی که یک نفر مسلمان حیوان ذبح میکنه در مقابل مخلوق و حیوان زبحه نمیکنه بلکه در جای زبحه میکنه که یک پروردگار ایر خاص و بخاطر رضای تو کرد اگر زیر پای یک مرده یا زیر پای یک زنده میکنه پس اونجا ای در مقابل الله نشد باید مخلوق حسف کنی مخلوق حس کنی در مقابل مخلوق نکنی روی تو به طرف قبل نبکنی در عبادت پس که عبادت نمیده میشه به خاطر رضایت الله جل جلاله به الله جل جلاله و, و در مقابل الله ما وقتی که در نماز استاد میشیم رو به طرف قبله در مقابل الله جل جلاله ایستاد شدیم الله بر ما گفته به طرف قبله برید و وقتی که استاد میشیم باز الحمد الحمدلله رب العالمین رحمان رحیم پروردگارا تو هستی مالک یوم الدین تو هستی به این شکل اینال چهارمین شرطش است که ما مسلمان ها هر چیزی که جایز است ناجایز است، حلال است حرام است، باطل است، حق است، خوب است، بد است، کی بر ما این را تعیین می‌کند؟ پس حق تعیین جایز و ناجیز و خوب و خراب، حلال و حرام این قانون، قانون الله جل جلو است. پس ما از قانون الله جل جلاله ای قسمت پیروی میکنیم پنجمیش در تطبیق قانون الله جل جلهو اطاعت کامل صورت بگیرند. که وقتی قانون ما تطبیق میکنیم باید اطاعت قانون الله را بکنیم نه قانون کسی دیگه و هر کسی که میخواید که قانون مخالف الله بسازه، او تاغود نامیده میشه و ما از تاغود و انسان های سرکش هیچ وقت بیروی نمیکنیم. بعد از که این را که توحید دارای کدام شروط است، نکته دیگری را باید بفهمیم که مطابق از این شروط اگر کسی یک عبادت را به نام انجام میده نماز به نام مخلوق میخونه رکوع به نام مخلوق می کنه سجده به نام مخلوق میکنه نظر به نام مخلوق میکنه قربانی به نام مخلوق میکنه ای مطابق این یاکن عبودو نیست مخالف از با توحید الوهیت با توحید عبادت در توحید عبادت میگه که عبادت خاص به الله هست ای یا کن عبودو بازی جمعه سجده و عبادت به مخلوق میکنی در این صورت این مخالف از می پس ما باید این رو که هر چیزی که عبادت نامیده میشه خاص بر الله جل جلاله هرمی میشه هر آنچه عبادت نامیده میشه خاص به نام الله جل جلهو انجام داده شوه و هر آنچه که عبادت نامیده میشه اناله اگر کسی عبادتی را بر مخلوق انجام داد در توحید الوحیت مشکل پیدا کند اگر کسی عبادت را ب مخلوق انجام داد در توحید الوحیت مشکل پیدا میکند و اگر کسی یک عبادت در مقابل یک مخلوق کرد باز هم در توحید الوحیت برایش مشکل پیدا میشه پس که میگه ما موحید هستم یک تا پرست هستم در توحید ربوبیت خب افعال کلشه به خالق نسبت میتونم بعضی کسا در توحید ربوبیت خوب هستن لکن مشکلشان در توحید چی هسته در توحید است. هست اینال توحید علوهیت چی تقاضا میکنن که عقیده داشته باشیم که مستحق عبادت فقط الله جل جلو جل هیچ عبادتی را بغیر از الله به نام کسی دیگه نکنیم و لا اله نیست هیچ کسی مستحق عبادت الا الله بغیر از الله جل جلاله عقیده داشته باشیم که عبادت فقط به نام الله جل جلاله جل میشه عقیده داشته باشیم که عبادت را که به نام الله انجام میدهیم در مقابل کدام مخلوق را انجام ندی و تمام عبادت ها خواه قلبی باشه، خواه مالی باشه، خواه بدنی باشه فقط برای الله جل و حکم میشه و الله توکل داشته باشیم، با او محبت داشته باشیم، از او بترسیم و وقتی که کن عبدو میگیم، خود ما چی میکنیم؟ خود کن عبدو چی ما نامیده؟ پروردگار خاص را عبادت میکنیم پس سجده عبادت هست ایا که نسجده خاص و تو سجده میکنیم ایا که نرکع و پروردگار خاص بر تو رو میکنیم؟ ایا که نصلی پروردگار فقط نام تو نماز میخونیم و نام تو نظر میدهیم ببینیم هر چیزی که نامش عبادت است او را فقط نام کی میکنیم به نام الله جلال جلال میکنیم و اینمی توحید اولویت است که اصل کلمه ما و شما این, این بود و محمد صلی الله علیه وسلم سیزده ساله که در مکه مکرمه زندگی کرد. درمی سیزده سال تمام زحماتی که کشید و تکالیفی که کشید همین بود که معنای لا اله الا الله در قلب مردم جای بجا بکند مشکل بسیاری از مردم ده چی است مشکلشون اصل مشکل بسیاری از مردم در است که اینا امی لا اله الله و زبان میگن لیکن از نگاه قلبی در دا داری قسمت مشکل دارن چطور مشکل دارن؟ از نگاه قلبی در زبانت حمدگو یا در دلت پیدا سنن عیبه باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ در ظاهر لا اله الا الله میگه اما بخاطر ازی که وقت بر عقیده ندادن و درس عقیده را گوش نگرفتن یعنی معنای لا اله الا الله ام نمی فهمه. و اگر ایره بفهمه باز بس ای بسیار د قسمت دقیق می باشه مشرکین قریش اول عزت محمد صلی الله علیه وسلم بسیار خوش داشتن ورا امین میگفتن، صادق میگفتن، طیب میگفتن، طاهر میگفتن لقبهای بسیار خوب خوب برای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دادن تا چه وقت؟ از سن هفت سالگی تا چل سالگی تا چل سالگی این لقبهای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم حتی 18 ساله بود وقتی که حجر میگذاشتند میگذاشتن پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم منحیث حکم پذیرفتن که بیایی سنگ حجر در جایش لیکن برازی هم مشکل چه وقت پیدا شد؟ مشکل وقت پیدا شد؟ که پیغمبر سم چل ساله شد. تا چل سالگی پیغمبر سم که هیچکس کس نداشت. ببینید تا چل سالگی؟ با هیچ کس غرض نداشت. نبود پرست چیزی میگفت. نه کسی که یک حیوان در مقابل بط می میکرد. نه کسی که در مقابل قبل رکو میکرد. یا سجده میکرد. رنگ و رنگ عادت داشتن بعضیا برای بت بعضی ها, س... با... ها سجده میکردن برای بجره ها بعضی شان سجده میکردن بعضی شان به ملائکه ها سجده میکردن بعضی شان مثلا و رنگ مردم بودن لکن پیغمبر سم تا 40 سالگی هیچ که سر رس نداشت و هیچ کس نمیفت که تو خوب میکنی یا بد میکنی چرا بخاطری که سرش وحی آمد بود و مردم هم آدم صالح خوش داره که خدا آدم خوب آدم باشه مشرکین خصوصا انتانای بدین انسان های صالح ها خوش شده. بسیار خوب آدم است، بسیار خوب شخصیت است. با خوب بد خلق جهان کار نداره. بسیار آدم خوب است. ولی کی بدشان میه؟ مصلح بدشان میه. و محمد صلی الله علیه و سلم تا چل سالگی صالح بود. بعد از چل سالگی مصلح شد. مصلح چی میگن؟ کسی که میخواه که دیگرها را اصلاح بکنن. و خصوص به خصوص اصلاح عقیده بسیار مشکل است بر درخ و چرا در, اس در مشکلات عقیده بسیاری مردم هستند که هم تو غرق کفر و شرک هستند و مجرد هیچ وقت خنات نمیکنه که من درای غلط روان هستم نه من درای درست روان هستم حضرت محمد شفا میتا جور میکنه صحت میتا از کجا فهمیده ایره ای به مخلوق ای صفات نسبت میتن و از این خاطر مشرک قناعت نمیکنه که ما شرک آوردیم قناعت نمیکنه اگر قناعت میکرد که ما اشتباه دارم حتما اصلاح میشد کافر قناعت میکنه اما مشرک بسیار سخت است قناعت کنه از این خاطر مسئله عقیده بسیار دقیق است و شیطان در قلب کس که از نگاه شرک در دا قلبش داخل شد باز این انسان به سادگی اجازه نمیده که از این شرک ای برایه. پس خارج شدن از دایره شرک بسیار زور می شما یک کم فکر بکنین بین کل ما فکر میکنیم. سری نقطه که تا چل سالگی نبی کریم صلی الله علیه وسلم و چرا مشرکین طیب و طاهر و صادق و امین می گفتن؟ و چرا بعد از چل سالگی؟ اینا تمام لقبهای ازیر تغییر دادن و تمام لقبهای ازیر کاذب، العیاز بله گفتن تو دروگوی هستی تو ساحر جادوگر هستی تو رنگ تو کاهن هستی تو فلانی هستی یعنی تمام لقبهای زشته چرا به پیغمبر سنباد از چل سالگی نسبت دادن بخاطر خاطر از ازی که مشرکین تا 40 سالگی پیغمبر صلی الله علیه و سلام میدن که ای در مقابل بت‌هایشان چیز نمیگه. هیچ چیز نمیگفت. چرا؟ به خاطر که بالای پیغمبر سم وحی نامده بود. و وقتی که وحی نامده بود، پیغمبر صلی الله علیه و سلام میرفته غار حرا. ماهارتر لاکن لکن نمیفهمید که چی گفته و دعوت هم کسرا نمیکرد تا یکی بالایش وحی آمد. برش گفت که اقرع باسم ربک الذی خلق یا ایها المدثر قم فانذر بخی مردم بترسان وقتی که پیغمبر برش گفته شد که بخی مردم بترسان از شرک از پرستی. اینا بودها را حیوانات در زیر پای بودها حلال می بخی اینا را بترسان پیغمبر تا چل سالگی می دید اصاف نایلد تا بودها بودن ای تا عاشق و معشوق بودن عاشق و معشوق آمدن در زمان جاهلیت در پیش خانه که زنا کردن چون در جای بسیار پاک که زنا کردن الله جل جلوه اینا را مسخه کرد اصاف و نائلت به دو سنگ مبدل شدن این دو سنگ به شکل بطه بود بود بود بود ای برای عبرت مردم بود لکن اصلا مردم جاهلیت چی عادت داشتند؟ یه که اوز عبرت بگیرن ایدو تا را به عبادت شروع کردن مقابل از عبادت میکردن بر ها رو و سجده میکردن وقتی که بر ها رو که رو میوردن در زیر پای اصاف و نائله میکشدن چرا؟ ایدو تا عاشقا بودن الحیاز برای که عاشق بود دیگه شاشق بود بود همیشه. دمیشق و عاشقی و بازیرم العیاذ بالله عطای کلمات و زشت و خالق نسبت میدن به حساب از اینکه عاشق و معشوق بودن بازیر پای عاشق و معشوق چی میکردن شطر زب همه کردن ایبان زب همه کردن با نبی کریم صلی الله علیه و سلام و زشت زشتنا را میدیدن ولی هیچ چیز نمیگفت چرا هنوز چلسونا نشده بود و هنوز بالاش وحی نامده بود وقتی که بالای وحی اومد اقرب اسم ربی که خلق و باز برش گفت که قم انذر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی که فاهمید که پروردگار بر یگانه مستحق عبادت است در سوق احکاس هر طرف میگشت چی می گفت پیغمبر صلی اللہ علیه مردم قولوا لا اله الا الله تفلحون بگوین که نیست هیچ معبود قابل پرستش الله بغیر از الله جل و جلو شما فلاح و کامیابی نصیبتان میشه ابو کسی که به تولد پیغمبر بسیار خوشحالی کرد و اولین کسی که بر پیغمبر سم شیر داد اما کنیز ابو بود ثوائبه نام داشت تا چهل سالاگی پیغمبر خوش داشت حتی در دار ندوه بر پیغمبر جای بود. این از زمان, زمان جوانی پیغمبر میرفت دار ندوه میشیش. کس مخالفت نمیکرد چرا میفت؟ برزیگ احترام خواست داشته. لیکن وقتی که چل ساله شد. که گفت لا ایلا. ابو جهل و ابو لهب گفت که خبر داری. گفت چی؟ گفت که محمد بسیار خطرناک گپ میزنه. ببینین. اونا عرب بودن. و از ما و شما کردن. مانایی کلیمه را خوب می فامیدن گفت چی میگه؟ گف میگه که لا اله نیست هیچ مخلوق قابل عبادت نیست هیچ بت نیست هیچ ملایکه بعضی ها را پرستش میکردن بعضیا ها بوت را پرستش میکردن بعضیا قبر را پرستش میکردن بعضیا سنگ را پرستش میکردن بعضی ها جنها را پرستش میکردن انواع مختلف عبادت ها پیش از اینا بود پیغمبر می که لا اله هی سیست شست که در اطراف که است کلشن نفیه می کنه الله و خالقی یگانه از اینی روز دشمنی ابو جهل، دشمنی ابو لحب، دشمنی امیه ابن خلف برای چی پیدا شد که پیغمبر می که به نام مخلوق نظر نکنین نام مخلوق قربانی نکنین در مقابل مخلوق سجده نکنین در مقابل مخلوق رکو نکنین اولادتان و به مخلوق تسلیم نکنین وقتی که گپا رو برشان گفته رفت این مردم گفتن اوه oh, اوه oh, oh, oh, ای پیغمبر چی میگه و اینجا بود که در مقابل پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیستن و پیغمبر صلی الله علیه و بالاخره مجبور ساختن که منطقی خدا ترک بکنن و هجرت بکنه و مجبور شدن مسلمان ها که هجرت بکنن به حبشه رفتن مسلمان ها پیش پیغمبران به مدینه منوره هجرت بکنن مسلمان ها هجرت کردن مرتبه اول مرتبه دوم چرا به حبشه رفتن به خاطر که اینجا مشرکین اینا رو زدن، لط میکردن میکشتن مشکلش چی بود پیغمبر هیچ چیز دیگه از اینا تقاضا نکرده بود فقط لا اله الا الله هیچ کسی مستحق عبادت نیست به غیر از الله جل جلو نیست هیچ معبودی به حق الا الله به غیر از الله جل جلاله اینا که در مقابل مسلمان خیس